عزیزان، امروز مطالعه انجیل یوحنا رو شروع می که مطلوب بسیاری از مردم هست و شاید مطلوب شما هم باشه. به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ما سفرمون رو در کتاب مقدس از پیدایش شروع کردیم و پس از عهد قدیم به عهد جدید رسیدیم و سه کتاب اول رو تموم کردیم و حالا به کتاب چهارم عهد جدید رسیدیم. دائما که ضمن مطالعه انجیل یوحنا شما به این شناخت نائل بشید که عیسی کیه؟ ایمان چیه؟ و زندگی چیه؟ این شما و این معلم ما سه انجیل مطا، مرقس و لغا به عنوان هم نزیر شناخته شدند چون که محتویات اون اناجیل مشابه هم هستند به دلایلی من اناجیل هم نزیر رو جدا از انجیل یوحنا بررسی میکنم اما دلیل اصلی اینه که 90 درصد از مطالب انجیل یوحنا در انجیل متا مرقس و لوقا وجود نداره. حالا که به انجیل یوحنا رسیدیم، میخوام شما رو در بررسی انجیل مورد علاقه هم هدایت کنم. انجیل یوحنا انجیل مورد علاقه بسیاری از مردم هست. دلیل دیگر منحصر به فرد بودن انجیل چهارم رو میتونید از هدف نگارش اون انجیل متوجه بشید. ضمن این که انجیل یوحنا رو با هم بررسی می کنیم، فکر می کنم شما منحصر به فرد بودن این انجیل رو تشخیص خواهید داد. نویسنده این کتاب همون کسیه که کتاب مکاشفه را هم نوشته. کتاب مکاشفه آخرین کتاب عهد جدید است. اگه با آخرین کتاب عهد جدید آشنایی داشته باشید، به نحوه نگارش و سبک این نویسنده آشنایی قبلی دارید. نویسنده کسی نیست جز یوهننای رسول او به غیر از این کتابها رسالات اول و دوم و سوم یوحنا رو هم نوشته اینها رسالات کوتاهی هستند که در اواخر عهد جدید میتونید اونها رو ببینید وقتی یوحنا کتاب مکاشفه رو می نویسه، او از کلماتی استفاده میکنه که برای درک سبک او به ما کمک میکنه در کتاب مکاشفه او می نویسه، مکاشفه ایسای مسیح که خدا به او داد تا اموری را که میباید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاده آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا این کلمه بسیار جالب ظاهر نمود نشون میده که یوحنا کتاب مکاشفه و انجیل یوحنا را به زبان زیبای رمز می مینویسه یا به زبان کنایه که باید رمزگشایی بشه پولس رسول در اولین باب از رساله اول قرنتیان به ما گفته که یونانیان افرادی منطقی را و از دید اونها انجیل جاهلانه بود. اما پولس در همون باب میگه که یهودیان به آیات نیاز دارند. منظور پولس این بود که یهودیان به نشانه از خدا نیاز داشتند تا ثابت کنه که خدا اونها رو به روش خاصی رهبری میکنه. پولوس همینطور منظورش این بود که یهودیان به زبان زیبای رمز تعلیم دیده بودند و با این زبان زیبای رمز با هم ارتباط برقرار می کردن. کتاب مکاشفه مثال بارزی از این زبان نشانه ای هست کل کتاب مکاشفه زیبا است و به زبان نشانه های یهودی وحی شده وقتی یوحنا مکاشفه و انجیل یوحنا را با الهام روح القدس می نوشت تقریبا مثل این هست که او پیامی برای قوم خدا با زبان رمزی زیبایی می نویسه و برای درک اون پیام قوم خدا به یک کلید رمزگشا نیاز دارند تا اون پیغام رو رمزگشایی کنند. حالا میخوام کلیدهایی بهتون بدم که به شما کمک میکنه که رمزهای زبان نشانهایی رو که یوحنا به کار برده باز کنید. نه تنها در کتاب مکاشفه بلکه در بررسی انجیل یوحنا هم به اون نیاز خواهید داشت. اولین کلید که برای درک انجیل یوحنا کمک میکنه اینکه بدونید این کتاب به زبان رمز یهودی نوشته شده. اگرچه زبان رمز به کار رفته در انجیل یوحنا به اندازه زبان به کار رفته در کتاب مکاشفه پیچیده نیست، با این حال ما باید در مطالعه انجیل یوحنا دنبال معانی عمیق‌تری بگردیم. انجیل یوحنا در دو سطح نوشته شده. سطح اول رو یک بچه هم میتونه درک بکنه. یوحنا از کلمات تکسیلابی بیشتری نسبت به دیگر نویسندگان اناجیل استفاده کرده. من خواندن رو به اولین پسرم از باب اول انجیل یوحنا آموزش دادم. یک بچه هم میتونه اولین سطح از انجیل یوحنا رو بخونه و درک کنه. اما سطح امیغتری هم در مفهوم و معنی انجیل یوحنا وجود داره. بالغترین و سرسپرده ترین مقدسین هم هرگز به عمق معنی واقعی انجیل یوحنا واقف نشدن. یوحنا اغلب از زبان کنایه برای عرضه مفاهیم انجیل یوحنا به ما استفاده میکنه. من شنیدم که میگن حتی یک بچه هم از اوته درک معنی سطح اول انجیل یوحنا برمیاد. اما برای درک سطح بعدی که سطح عمیق هست و برای گشودن رمز این کتاب شما باید حداقل مدرک دکترای فلسفه و حکمت داشته باشید تا بتونید حتی این انجیل رو درک کنید. اما من فکر نمیکنم شما به دکترای فلسفه نیاز داشته باشید شما به روح القدس نیاز دارید وقتی شروع به خواندن می‌کنید روح القدس شما را به اعماق معانی انجیل یوحنا راهنمایی خواهد کرد انجیل یوحنا به خاطر سطح دوم اون که از زبان رمز زیبای الهامی تمثیلی و روحانی استفاده کرده انجیل محبوب من هست کلید دیگری که میتونه در رمزگشایی پیام منحصر به فرد انجیل 4 به شما کمک کنه اینه که بدونید انجیل یوحنا تنها کتاب در کتاب مقدس است که خطاب به غیر ایمانداران نوشته شده. پولس رسول در دوم تیموتائوس 3:16 و به ما میگه که هدف کل کتاب مقدس چیه؟ او میگه تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در ادالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. بنابراین کتاب مقدس خطاب به غیر ایمانداران نیست بلکه کل کتاب مقدس خطاب به ایمانداران نوشته شده خدا فقط یک پیام به غیر ایمانداران داره و اون پیام اینه که به انجیل ایمان بیارید و توبه کنید اما خدا به ما ایمانداران و شش کتاب کوچک الهامی مقدس داده چون میخواد که ایمانداران کامل و بالغ بشن خدا میخواد که به لحاظ روحانی رشد بکنیم و کامل بشیم و به همین دلیل ما رو خلق کرده و نجات داده. خدا میخواد که ما برای انجام همه کارهای نیکویی که او از ما میخواد تجهیز بشیم. چیزهای زیادی در انجیل هست که قوم خدا رو کامل میکنه. اما از این گذشته انجیل یوحنا تنها کتابی در کل کتاب مقدسه که خطاب به غیر ایمانداران نوشته شده تا اونها هم بتونن ایمان بیارن. یوهننای رسول در انجیل یوحنا و رساله اول یوحنا به ما میگه که چرا برای ما می نویسه. اگه اگر به آیاتی که یوحنا منظور از نوشتن انجیلش شما با ما در میون میذاره نگاه بکنید این کمک شایانی به شما خواهد کرد. یوحنا هدف خودش را از به بردن زبان زیبای رمز در این کتاب برای ما بازگو کرده. منظور او از نشانه ها شواهد معجزه آسا هست. کارهایی که ایسا انجام داد و یوحنا معتقد بود که نشانه ها و مجزه هایی هستند که ثابت میکنند که ایسا همان مسیح پسر خدا است و ناجی کل جهانه. یوحنا در آیات سی و سی که با بابه به ما میگه و ایسا معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد. لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خدا است. و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. بید. طبق زیرنویس تفسیر کتاب مقدس یک نشانه شاهدی موجز آسا هست که به قدرت خدا در فیض نجات بخش شاره میکنه. منظور یوحنا از نوشتن انجیل چهارم این بوده که ما بتونیم این شواهد موجزاسایی رو که از عیسی به جامونده بررسی کنیم تا به ما ثابت بشه عیسی همون کسی بود که ادعا می کرد و دلیل آمدنش به این دنیا رو درک کنیم. در آخرین آیه از انجیلش او به ما اینطور میگه. البته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزئیات آنها به تفصیل نوشته شود تصور میکنم تمام دنیا هم گنجایش کتابهایی را که نوشته میشد نمی داشت اما یوحنا به ما میگه عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که من از بین آنها برخی را انتخاب کردم و در این کتاب نوشتم تا شما ایمان بیارید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان شوید این منظور یوحنا از نوشتن انجیل چهارم هست به همین دلیل این کتاب منحصر به فرده چون این کتاب خطاب به غیر ایمانداران نوشته شده و هدف از نوشتن اون این بوده که غیر ایمانداران با خوندن این کتاب به مسیحیمان بیارن و وارث حیات ابدی بشن درک هدف یوحنا از نوشتن این کتاب میتونه طرز مطالعه شما رو عمیقا تحت تاثیر قرار بده و در درک مفاهیم اون به شما کمک کنه به این دلیل وقتی مردم به شبانشون میگن می کتاب مقدس رو مطالعه کنیم و می‌پرسند از کجا باید شروع کنیم، شبان از اونها می‌پرسه آیا ایماندار هستید و وقتی اونها میگن نه ولی علاقمندیم، اغلب شبان به اونها میگه از انجیل یوحنا شروع کنید چون هدف یوحنا از نوشتن انجیلش همین بوده. یوحنا خطاب به غیر ایمانداران نوشته و هدفش این بوده که اونا بتونن ایمان بیارن و حیات ابدی رو تجربه کنند. کلید دیگه برای درک انجیل یوحنا اینه که بفهمید برخلاف دیگر انجیل‌ها انجیل یوحنا از این نظر منحصر بفرده چون یوحنا مباحث منظمی را عرضه میکنه دیگر انجیل مباحث منظمی عرضه نمیکنند اونها عمدتا زندگی نامه عیسی را به ما عرضه میکنند و تعالیم عیسی و بسیاری از معجزات و شفاهای او را با مادر میون میذارند همونطور که قبلا دیدیم اونها دیدگاههای متفاوتی از زندگی مهمترین شخص روی زمین داشتند اما یوحنا مباحث منظمی ارائه میکنه ما پسی که یوحنا در سراسر باب 21ش عنوان میکنه اینه که عیسی مسیح است. همان های موعود پسر خداست رد پای این حقیقت رو در انجیل یوحنا از باب 1 میبینیم در سراسر انجیل تا انتها در هر باب میبینیم که یوحنا این حقیقت رو برای ما تاکید و تصریح میکنه یوحنا مرتبا و به طور منظم بر این مبحث تاکید میکنه و به ما میگه که این عیسی ایسای ناصری که در اینجا ذکر شده، مسیح است، پسر خدا و ناجی جهانه. خداوند و منجی ما مثل مردمان عادی، مثل هر کدام از ما نام و نام خانوادگی نداره. ایسا اسم او بود، اما مسیح عنوان او هست. وقتی ما از او با عنوان ایسای مسیح یاد می کنیم، منظورمون اینه که همون ایسا که از ناصره بود، مسیح خدا است کلمه مسیح در زبان یونانی همون کلمه عبری مسخایا یا مسیها هست. وقتی یوحنا به ما میگه ایسایی که در عهد جدید با او ملاقات میکنیم مسیح است، منظورش همون مسیها هست که در کتب عهد قدیم آمدنش نبوت شده. در کتاب اعمال گفته شده پولس رسول که یک عالم یهودی بود، در سفرهای بشارتیش شهر به شهر میرفت و به کنیسه ها میرفت و با علمای یهودی اونجا مباحثه میکرد، کرد و از کتاب مقدس برای اونها دلیل می آورد که ایسا همان مسیح است در نامه به کلیساها پولس رسول به ما میگه که اساس تعلیم عقیدتی در مورد روابط در کلیساها اینه که عیسی خداوند هست در اول قرنتیان دوازده او میگه هر که به الهام روح خدا سخنگوید عیسی را لن نمیکند و هیچکس جز به واسطه ی روح القدس نمی تواند بگوید عیسی خداوند است در اواخر عهد جدید در نامه اول یوحنا یوحنا رسول به ما میگه که اساس تعالیم الهیاتی در کلیساهای عهد جدید اینه که عیسی مسیح خداوند هست وقتی تمام این اطلاعات را کنار هم قرار میدید به چیزی دست پیدا میکنید که من بهش نحوه کرد به انجیل یوحنا گفتم بر اساس چیزهایی که به عنوان مقدمه انجیل چهار روم با شما در میون گذاشتم فکر می کنم که شما باید به این ترتیب به انجیل یوحنا بپردازید. با در نظر گرفتن منظور یوحنا از نوشتن انجیل چهار روم، ما باید ابتدا به 21 باب انجیل یوحنا برای یافتن جواب این سه سؤال بپردازیم. سوال شماره یک، عیسی کی هست؟ سوال شماره دو، ایمان چیه؟ و سوال شماره سه، حیات چی هست؟ یوحنا در دو آیه آخر باب بیستم انجیلش به ما میگه که عیسی آیات زیادی در حضور شاگردان به ظهور رسانده که در این کتاب نوشته نشده و همین مقدار را هم برای این نوشته تا ما ایمان بیاریم که عیسی همان مسیح پسر خداست و با این ایمان در نام او حیات داشته باشیم در هر باب از انجیل یوحنا او به روش های زیبایی به ما میگه و ثابت میکنه که عیسی همان مسیح یا مسیح های موعود و یگان پسر خدا هست. یوحنا این حقیقت بنیادی رو در هر بیست و یک باب کتابش به روشی متفاوت عنوان میکنه در هر کدوم از این بابها شما همینطور باید دنبال جواب این سوال باشید ایمان چیه یوحنا گفته من به شما این چیزها رو در مورد عیسی میگم و حالا اگه نوشته ها رو بررسی کنید شما میتونید و باید قانع بشید که عیسی مسیح است و پسر خداست اگه به این حقایق که در مورد عیسی میگم باور کنید حیات ابدی خواهید یافت در هر باب یوحنا نه تنها به ما میگه که به استدلالهای اصولی او درباره عیسی باور کنیم، بلکه او به ما نشون میده و میگه وقتی ما رو تشویق میکنه به استدلالهای او درباره اینکه عیسی کی هست باور کنیم، منظورش چیه؟ ایمان چیه؟ تعریف کردن مفهوم ایمان خیلی سخته بنابراین در هر باب به های زیبایی یوحنا این رو برای ما به تصویر میکشه که عیسی کی هست و نشون میده ایمان به اینکه عیسی همون مسیحه یعنی چی؟ یوحنا به ما میگه که اگه نوشته های او را مورد بررسی قرار بدیم و به نوشته های او در مورد مسیح بودن عیسی باور کنیم، حیات ابدی خواهیم یافت. این حیات ابدی که یوحنا از اون صحبت میکنه بیش از اون که ابدی به لحاظ کمیت باشه، ابدی به لحاظ کیفیت هست. یوحنا در باب ده آیه ده میگه عیسی گفته من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. خدا نوع زندگی رو تراحی کرده و بنابراین توقع داره انسانها اون رو تجربه کنند. این چیزیه که یوحنا وقتی از واژه حیات ابدی صحبت می‌کنه مورد نظرش هست. حیات ابدی حیاتی هست جاودانی به لحاظ کیفیت و کمیت. یوحنا میگه ما نمیتونیم این نوع حیات رو با تولد جسمانی تجربه کنیم، اما اگه چیزی رو که او بهش تولد تازه یا تولد روحانی میگه تجربه کنیم، در نتیجه این تولد تازه یا روحانی ما زندگی رو در سطح بالاتری تجربه خواهیم کرد ما زندگی به کمال یا زندگی ابدی خواهیم داشت در هر باب این انجیل یوحنا نه تنها به ما میگه که حیات ابدی چی هست بلکه اون رو برای ما به تصویر میکشه بنابراین وقتی هر باب از این انجیل رو میخونید باید این سوال رو بپرسید یوحنا حیات چیه در هر بیست و یک باب انجیل یوحنا منظور تو از حیات ابدی چیه در هر 21 باب انجیل یوحنا دنبال جواب این سه سوال بگردید یوحنا در این باب به من بگو یسا کیه یوحنا در این باب به من بگو ایمان چیه یوحنا در این باب به من بگو حیات چیه با دعا متوجه میشید که یوحنا در هر باب از انجیلش عمیقا جواب این سه سوال رو داده دیدگاه دیگری در مورد مطالعه انجیل یوحنا هست که مایلم با شما در میون بذارن در باب دوازدهم این انجیل ایده یونانی نزد فیلیپس رسول میاند و به او میگن سرور ما ما میخوایم عیسی رو ببینید. وقتی این انجیل رو را میخونید، اگه به پاسخ به این درخواست نگاه کنید، عیسی رو میبینید و خواهید فهمید که انجیل یوحنا مثل یک گالری هنری روحانی هست. هر بابی مثل یک سالن در اون گالری هست و در هر کدام از اون سالن ها، تابلوها یا آیاتی به دیوار نصب شده و شما در اونجا پرتره های ایسای مسیح رو خواهید دید. در هر باب از انجیل یوحنا رسول محبت پورتری های زیبایی از عیسی رو به شکل کلمات به شما ارائه میکنه. ضمن مرور انجیل یوحنا بیایید در هر باب دنبال پورتری های عیسی بگردیم. من پانزده تصویر از عیسی در باب اول و 14 تصویر در باب 4 پیدا کردم. یکی رو انتخاب کنید و در هر باب از انجیل یوحنا یکی از تصاویر عیسی را حفظ کنید. شبهایی که نمیتونید بخوابید بر اساس از عیسی که برای هر باب از انجیل یوحنا انتخاب کردید او رو به مثلا در باب یک این پورتر را می‌بینید که اینک بر ری خدا که گناه از جهان بر در باب دو کسی که می‌تواند آب شما را به شراب تبدیل کند و شادی و حیات ببخشد. و در باب سه تنها پسر خدا، تنها راه حل خدا و تنها ناجی خدا. در باب چهار آب زنده. در باب پنج کلید آیات کتاب مقدس. در باب شش نان حیات در باب هفت معلمی که از جانب خدا آمد. در باب هشت کسی که می داند از کجا آمده و میداند به کجا خواهد رفت. در باب نه نو، نور جهان. در باب ده شبان اعظم گوسفندان. در باب یازده قیام و حیات. در باب دوازده دانه ی که در زمین می افتد، می میرد تنها میماند ماند. لکن بعد از اینکه که می میرد سمن بسیار می آورد و پدرش را جلال میدهد در باب سیزده خادمی که پاهای شاگردانش را میشوید در باب 14 کسی که میگوید من راه راستی و حیات هستم در باب 15 تاکی که دنبال شاخه ها میگردد در باب شانزده کسی که فرستنده روح القدس هست. در باب 17 کاهن عظمی که برای کلیساش دعا میکنه در باب هجده بزرگترین شاهدی که گفت از این جهت من متولد شدم و به جهت این در جهان آمدم. تاب راستی شهادت دهم. در باب نوزده مسیح مصلوب شده، در باب بیست مسیح قیام کرده و در باب بیست و یک مسیح معموریت دهنده. سالها قبل یه نفر از مادر ترزا پرسید، عیسی مسیح برای تو چه مفهومی داره. وقتی او داشت جواب میداد، به نظر می او نه تنها چکیده انجیل یوحنا را بازگو می‌کرد، بلکه از کل کتاب مقدس حقایقی را که درباره عیسی بیان شده، عنوان می‌کرد. برای اینکه تصویری از عیسی برای خودتون داشته باشید و بدونید که عیسی برای شما چه مفهومی داره، تشویقتون می میکنم در انجیل یوحنا تحمل کنید و برای هر باب خودتون تصاویری از مسیح انتخاب کنید. من پرتره های خودم را از عیسی از میان 21 باب انجیل یوحنا با شما در میان گذاشتم. شما هم میتونید برای خودتون تصاویری انتخاب کنید و هر کدوم از اونها رو عنوانی برای هر باب انجیل یوحنا قرار بدید. عناوین انتخابی رو حفظ کنید و بدین وسیله در انجیل یوحنا تعمل کنید. وقتی اون یونانی‌ها نزد فیلیپس رسول آمدند و گفتند سرور ما ما میخواهیم عیسی رو ببینیم، میتونید درخواست اونها رو به عنوان دعای شخصی خودتون در خلال مطالعه انجیل یوحنا قرار بدید. مشایخ کلیسای سابق من اون درخواست یونانی‌ها رو بر روی صفحه برونزی حک کرده و اون رو روی سکوی خطاب چسبونده بودند. من هر یکشنبه وقتی برای موعظه میرفتم، اون درخواست رو میدیدم. اونا نه تنها میخواستند من هر هفته اون رو ببینم بلکه میخواستند هر بار که میهمانی داشتیم اونها همون رو اونجا ببینند که نوشته سرورم ما می خواهیم عیسی را ببینیم مشایخ میگفتند ما صحبت های دو پهلوی جامعه شناسی نمی‌خواهیم ما حرفهای سیاسی نمیخواهیم ما بحث‌های روان شناختی نمی‌خواهیم بلکه فقط می‌خواهیم عیسی را ببینیم هر بار که کسی پشت این تریبون می میکنه ما فقط میخواهیم عیسی را ببینیم با این دعا در قلبتون که میخوام عیسی را ببینم وارد انجیل یوحنا بشید از روح القدس بخواهید ضمن مطالعه انجیل یوحنا مکاشفه کاملی از عیسی به شما بده در باب اول انجیل یوحنا محققین میگن که هجده آیه اول باید به عنوان مقدمه تلقی بشه از یه واعظ روستایی شنیدم که میگفت وقتی موعظه میکنید باید سه کار انجام بدید اول باید بگید که از چی میخواید صحبت کنید درسانی باید مطلب رو بگید و سوم باید به با اونا بگید که چی بهشون گفتید این پیشنهاد خوبی برای واعزینه و یوحنا دقیقا همین کار رو در انجیلش کرده در هجده آیه اول انجیلش یوحنا میگه که قصد داره در چه موردی صحبت کنه بعد از آیه 19 باب یک شروع میکنه و تا باب بیست مطالب مورد نظرش رو به ما میگه و بعد از آیه سی تا 31 باب بیست به ما میگه که از چی صحبت کرده در مقدمه یوحنا شما مینیاتوری از انجیل یوحنا رو میبینید و میشه گفت که کل انجیل یوحنا رو به شکل یک کپسول میبینید در مقدمه یوحنا به ما میگه که عیسی کلمه خدا بود کلمه وسیدهی برای انتقال یک فکر هست اگه من بخوام اندیشه ای رو از ذهنم به ذهن شما منتقل کنم برای این کار از کلمات استفاده میکنم. خدا اندیشه های زیادی خطاب به انسان داشت که میخواست اونها رو به انسان منتقل کنه. اون اندیشه توسط عیسی بیان شد. وقتی یوحنا میگه عیسی کلمه بود دقیقا منظورش همینه. همونطور که این کلمه زنده خدا این وسیله خدا بیان کرده عیسی در ابتدا با خدا بود و عیسی خدا بود. بزرگ انجیل یوحنا اینه کلمه جسم شد و در میان ما زندگی کرد تا ما بتونیم جلال خدا رو مشاهده کنیم قوم خدا سالیان متمادی کلام مکتوب خدا رو داشتند اما وقتی خدا به دنیا نگاه کردید که قومش به چیزی بیش از کاغذ و مرکب نیاز دارم خدا خواست که ما چیزی بیش از یک کلام مکتوب داشته باشیم حتی فراتر از یک کلام مکتوب وحی شده که از پیدایش تا ملاکی وحی شده بود خدا می‌خواست ما کلامی داشته باشیم که بتونیم ببینیم کلامی جسم پوشیده بنابراین خدا جسم پوشید و در میان ما ساکن شد تا ما بتونیم مشاهده کنیم با او رابطه و تعامل داشته باشیم که بسیار بهتر از خواندن اندیشه‌های عمیق خدا بود در این مقدمه یوحنا باز هم هدفش از نوشتن این انجیل رو برای ما بازگو می‌کنه او میگه کلمه جسم پوشید و پیش قوم مورد نظرش یهودیان ر اما اونها او را نپذیرفتند بعد او به طرف هر کسی که او را پذیرفت برگشت و به کسانی که او را پذیرفتند این اختیار رو داد که خودشان را فرزندان خدا بنامند و این کسانی که او را پذیرفتند حتی کسانی که به او ایمان آوردن که او پسر خداست چیزی را تجربه کردند اونها تولد تازه یافتند نه از جسم خون بلکه از خدا تولد یافتند به عبارت دیگه تولد تازه یافتند حالا این چیزی که یوحنا میخواد به ما بگه در گفتگوهای عیسی در انجیل یوحنا او به طور منظم به ما نشون میده که وقتی مردم به طور شایسته به عیسی پاسخ دادند، وقتی او را پذیرفتند، وقتی به او ایمان آوردن، تولد تازه رو تجربه کردند. اونها نه از جسم خون، بلکه از روح تولد یافتند. از خدا تولد یافتند، تولدی دوباره. در 18 های اول انجیل یوحنا بعد از اینکه او به ما میگه که قصد داره در بقیه باپ از چی صحبت کنه، از آیه نوزده شروع می کنه و در تولد یهیه تعمید دهنده با ما صحبت می کنه آیا یهیه را به خاطر میارید؟ او رو در اناجیل هم نزیر هم دیدیم ملاحظه کنید که در مقدمه انجیل یوحنا، وقتی او از عیسی با ما حرف می زنه، از کلمه زندهی که جسم پوشید و به دنیا آمد او بارها میگه او بود او بود او بود اما به همراه اون آیات که از آمدن مسیح به جهان به ما خبر میده، آیاتی هم وجود دارند که از یحیای تعمیددهنده با ما صحبت میکنه که طلایهدار عیسی بود. یحیای تعمیددهنده آخرین نبی مسیحایی بود. مقدمه انجیل یوحنا بارها به ما میگه که او نبود. او نبود، او نبود. جالبه که وقتی این دو مرد نبوت رو به کمال میرسونند و وارد صحنه میشن، یحیای تعمیددهنده مرتبا میگه من نیستم، من نیستم و در باب سوم مردم نزد یحیا میاند و میگند استاد، تمام کسانی که تو رو پیروی می‌کردند حالا عیسی را پیروی می‌کنند و یحییای تعمید دهنده میگه، من گفته بودم من نیستم من سعی می کنم به شما بگم من نیستم او هست او باید ارتقا یابد و من باید کوچک شوم وقتی عیسی وارد صحنه میشه بر اساس انجیل یوحنا ملاحظه کنید که چطور او مکررن میگه من هستم من هستم من هستم همونطور که در مقدمه بارها و بارها یحیی میگه او بود او بود او بود این دو مرد وقتی وارد صحنه میشن اون واقعیت رو تصدیق میکنن یحیای تعمید دهنده میگه کسی که او رو فرستاده گفته که روزی وقتی کسی رو تعمید میدی روح القدس به شکل کبوتر بر او خواهد آمد وقتی این اتفاق افتاد باید بدونی که این شخصی که تعمیدش دادی پسر خدا بوده ما در همون باب اول انجیل یوحنا می که میگه وقتی عیسی ناصری را تعمید میدادم روح القدس به شکل کبوتری بر او قرار گرفت و من می خوام شهادت بدم که این پسر خداست. یوحنا رسول به طور منظم این نشانه را اعلام کرده. یوحنا از باب اول شروع می کنه و این استدلال رو در سراسر انجیل خودش مطرح می کنه. در باب اول استدلال یوحنا اینه که عیسی پسر خداست چون وقتی تعمید دهنده او را تعمید میداد روح خدا به شکل کبوتری بر او قرار گرفت. یحیای دهنده همینطور عیسی را به طرز شگفتانگیزی معرفی میکنه او میگه اینک بره خدا که میآید تا گناه از این جهان بردارد ما مردانی رو در باب یک می بینیم که قبل از اینکه شاگردان عیسی مسیح بشوند و بعدها رسولان عیسی بشوند شاگردان یحیای دهنده بودند یحیی بدون خودخواهی و با فروتنی شاگردانش را به عیسی معرفی میکنه و اونا را راهنمایی میکنه که مسیح رو پیروی كند یکی از شاگردان یهیا مردی به نام آندریاس هست شاگردان یهیا شروع به پیروی از عیسی می کنن ایسا رو به اونها می کنه و از اونها می پرسه چه میخواهید؟ این سؤال عمیقی هست ما مخلوقاتی با اراده آزاد هستیم و می تونیم هرچی که بخوایم داشته باشیم خدا این اصل رو بر هم نخواهد زد اراده آزاد انسان برای خدا خیلی محترمه اراده آزاد ما یکی از راههایی هست که نشون میده ما به شباهت خداوند خلق شده ایم ما باید عواقب چیزهایی رو که میخواهیم تحمل کنیم اما میتونیم هر چیزی که بخواهیم داشته باشیم عیسی رو به این مردان میکنه و میپرسه چه میخواهید اونها با یک سؤال عملی به او پاسخ میدن عیسی گراه هست و این مردان هم همینطور. وقتی عیسی میپرسه چه میخواهید اساس چیزی که اونها به او گفتن این بود استاد کجا زندگی می ما الهیات تخت سیاهی نمیخواهیم آیا چیزی که تو تعلیم میدی واقعا کاربرد داره ؟ عیسی هم به همون ترتیب پاسخ میده بیایید و ببینید عیسی از اونا نمیخوادبل فاصله همه چیز رو بپذیرند عیسی اونا رو وادار نمیکنه که رسالت او رو بپذیرند و اعتقادنامه رو امضا کنند عیسی فقط میگه بیایید و ببینید ما میخونیم که اونا اومدن و دیدن که او کجا زندگی میکنه و اونا هم با او زندگی کردند و بعد در ادامه می بینیم که وقتی رفتند و دیدند که کجا زندگی می کنه، همه اونها برای او زندگی کردند و برای او مردند. یکی از این مردان نتنائیل هست. نتنائیل به نظر می وقتی ایسا رو ملاقات کرد، مرد خداشناسی بوده. همه کسانی که رسولان عیسی شدند احتمالا کتاب مقدس رو خونده بودند اما نتنایل به نظر می مرد فوقالعاده پارسایی بوده. او احتمالاً با خدا زیر درخت انجیر مناجات می کرده و احتمالاً کسی جز خدا و نتنایل از این خبر نداشتند. وقتی نتنایل ایسا رو ملاقات کرد عیسی گفت این یک اسرائیلی واقعیه که در او مکری وجود نداره به عبارت دیگه این مرد یک یهودی مقدس هست نتنایل پرسید مرا از کجا می شناسی ایسا جواب داد پیش از آن که تو را صدا کند وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. نتنایل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی در جواب گفت: آیا فقط به این علت که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهید دید. ما میتونیم آخرین آیه باب یک انجیل یوحنا رو دوستی زیر درخت انجیر بخونیم. نتنایل جایی برای ملاقات با خدا داشت. آیا شما هم جایی برای ملاقات با خدا دارید؟ آیا شما هم جز یاران درخت انجیر هستید؟ یکی از دوستان خوب من که یهودی هست، درخت کوچه که انجیری به من هدیه داد و من اونو توی اتاق نشیمن گذاشتم و زیر اون درخت و زیر اون درخت وقت خلوت با خدا دارم. حالا میخوام سه سؤال کلیدی خودم را مطرح کنم تا رمز پیام رمزی یوحنا رو باز کنیم. عیسی کیه؟ ایمان چی هست و حیات چی هست؟ عیسی در باب یک کی هست؟ عیسی کلمه هست که جسم پوشید و در بین ما زندگی کرد. جمله زیبایی در آیه هفته است که میگه زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. فیض یک عتیه هست که نیروی محرکه ما برای زندگی طبق خواست خداست. فیض و راستی به واسطه عیسی آمد. یعنی توسط عیسی مسیح ما نه تنها حقیقت را دریافتیم مانند حقیقتی که توسط موسا دریافت کردیم بلکه فیض هم به ما عطا شد که به واسطه اون بتونیم حقیقتی رو که توسط عیسی به ما داده شده بپذیریم عیسی مسیح در یک یکی است عیسی کلمه ازلی در جسم انسانی است تا ما بتونیم اندیشه بارز خدا رو نسبت به انسان ببینیم و جلال و فیض او رو مشاهده کنیم او بره خداست که آمد تا گناه از جهان برداره. این یعنی هویت عیسی من 13 عنوان دیگه برای عیسی در باب یک دارم. ولی به اونها اشاره نمی کنم. در باب یک خودتون به این سوال جواب بدید: عیسی کی هست؟ ایمان در باب یک چی هست؟ ایمان در باب یک واکنش شایسته به عیسی هست. وقتی کلمه ابدی جسم پوشید پیش قوم یهود رفت، اما اونها او رو نپذیرفتند. بعد او به طرف هر کسی که او رو پذیرفت برگشت و به کسانی که او رو پذیرفتند، این اختیار را داد که فرزندان خدا شوند و تولد تازه رو تجربه کنند. پس در باب اول ایمان یعنی باور به عیسی مسیح و پذیرفتن او. ایمان همینطور از گفتگوهای عملی بین عیسی و مردان که بعدها رسولان او شدن به تصویر کشیده شده. ایمان نزد ایسا میاد و ایسا میپرسه چه میخواهی؟ ایمان میپرسه این در زندگی چه کار بردی داره؟ ایمان به دعوت بیا و ببین عیسی پاسخ میده ایمان میاد و میبینه ایمان از شما نمیخواد قبل از اینکه بتونید عیسی را پیروی کنید بیایید و در یک امتحان الهیات شرکت کنید ایمان پاسخ ما به دعوت عیسی از ماست بیا و ببین حیات در یک چی است حیات تولد دوباره هست. حیات تمام اون چیزهایی هست که بعد از اینکه تعهد میکنید بیایید و ببینید برای شما پیش میاد حیات تمام تغییراتی هست که به خاطر پیروی عیسی در زندگی شما پیش میاد بر اساس باب اول انجیل یوحنا این تعریف عیسی ایمان و حیات در باب یک است بذارید تاکید و تکرار کنم هدف از انجیل یوحنا اینه که یوحنا میخواد ما بدونیم عیسی کیه او میخواد به ما تصاویری از عیسی بده یوحنا میخواد ما درک کنیم چطور خود ما میتونیم شخصا به همه این حقایق عجیب در مورد عیسی باور کنیم و ایمان بیاریم. بنابراین در تمام بابهای انجیل یوحنا او به ما خواهد گفت که عیسی کیه، به ما میگه که ایمان چیه و میگه که چطور میتونیم به فراوانی حیات دست پیدا کنیم. به این دلیل خود یوحنا در دو آیه آخر باب 20 انجیلش به ما میگه که چرا این پیام رمز زیبا رو نوشته که به ما روحانی عمیقی رو به طور هنرمندانه به تصویر کشیده. عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد. لکن همینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. دوستان آیا به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ اگر نیاوردین امیدواریم که ضمن بررسی انجیل یوحنا این باور برسید که ایسا همون مسیحه، پسر خدا و با این باور به حیات ابدی وارد بشید. دانشجوی عزیز، اگه قبلا عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و ناجی خودتون پذیرفتین، امیدواریم که این کتاب به شما کمک کنه ضمن روش در شناخت ایسا انجیل او رو با دیگران هم در میون بذارید. لطفا ترتیب بدین. در جلسی بعدی در ادامه بررسی انجیل یوحنا با ما همراه باشید. تا اون ساعت، امیدواریم از حیات ابدی اون لذت ببرید و اون رو با دیگران هم در میون بذارید.